الحمدلله و صلات و سلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم در درس گذاشته ما و شما بحث مقایسوی داشتیم بین دو فصل که یکی توحید است و دیگه شم شرک در درس گذاشته گفتیم که وقت ما مقایسه میکنیم بین توحید و شرک در اشت بخش تقسیم بندی میکنیم که در ذات، صفات، عبادت، استعانت، نزدیکی، افعال، قانون و اسماع وقتی که ما این تقسیم بندی ها را باز می‌فهمیم تقسیم توحید مثلا علماء توحید تقسیم کردن بعد توحید ربوبیت ربوبیت چی مانا؟ یعنی افعال خداوند متعال جل جل که خداوند خلق کننده است روزی دهنده است تشریش میکریم در این قسمت باز میفهمیم توحید علوهیت مقصدش توحید عبادات است که مثلا ما... کل عبادت خدا مخصوص خداوند بکنیم توحید تقریمی است که صلاحیت حلال و حرام فقط خدای عزواجل داره و توحید اسما و صفاتی است که ما باید نامهای خداوند و صفات خداونده با نامها و صفات مخلوقات تشبیه نکنیم و اگر ظاهرا مثلا یک نام با نام دیگر مشابهت داره از نگاه معنا و دلالت با هم فرق میکنن بمیشکل المیکسب تقسیم شرک هم شرک در ربوبیت است در الوهیت است در تقلیل است و در ما و صفات است بعضی ها در افعال خداوند شرک میارند بعضی ها در عبادت خداوند کسر شریک می بعضی ها در قانونگذاری و تقلین امرای خداوند کسرا شریک می و بعضی هم در نامها و صفاتش با خداوند کسر شریک می خب ما و شما در رفت گذشته توحید ذات و صفات خانم درست است توحید و شرک در زات و صفات فا امروز می امترد توحید و شرک در عبادت ها خب ما شما در درس درست کذاشته گفتیم که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو طایفه مردم بودن موحدین بودن درست است نه؟ کی بودن؟ موحدین بودن و دیگه کی بودن؟ مشرکین بودن ایناله کی برای ما گفتم ایتانه که موحدین کدام مردم بودن؟ بگن شما شباست موحدین کی بودن؟ خود عزت محمد صلی اللہ وسلم بود اولاد و آل اولا بیتی و, و نورتو صحابه, صحابه کرام. موحیدین سی طایفه مردم بودن؟ درست هسته؟ شما بگوین؟ کی بود موحیدین؟ موحیدین خود حضرت محمد بود اهل بیتش بود و صحابه بود و مشرکین کی بودن؟ مشرکین یهود بود مشرکین یهود، مشرکین نصارا و... و مشرکین حبشا. قرائش و حبشب خب، این ما شما این سه بحش فامیدیم آلما همین سر توحید در عبادت امی موحیدین چه قسم عبادت میکردن؟ و مشرکین چه قسم عبادت میکر اذا اسم قیس بین بینه واحد و مشرکین ما را حقیقت توحید و شرک میفهمیم. و وقتی که راه باز ما خدای نخواسته در مرض شرک هم مبتلا نمیشیم و ما خود ما موحدین واقعی مثل پیغمبر و آل بیت پیغمبر و صحابه کرام میباشیم. موحدین که رسول الله صلی الله علیه و بود، اینا توحیدشان چه قسم بود؟ توحیدشان این قسم بود در عبادت گفتم ماست در عبادت. اساس توحید خودش قرار میدادن. اساس توحید خود ای آیه شریفی که ایا که نعبودم ایا که درست ببینن مشرکین میگفتن خداوند را عبادت میکنیم خوب متوجه باشین مشرکین میگفتن خداوند را عبادت میکنیم ما میگفتن الله را عبادت میکنیم موحیدین چی میگفتن؟ موحیدین میگفتن که خاص خداوند را عبادت میکنیم دیم ایا که پس چی فرق از بین خداوند را عبادت میکنیم و فرق بین ای که مثلا خاص خداوند را عبادت می کنیم مطاجع شانسه کنیم وقت ما می که خداوند را عبادت میکنیم چی فرق از بین ازی من می که اقیل عقیل در صنف هست. است؟ تو بخی بگو فرق دو جمله ما میگم که عقیل در صنف در جمله اولی. در جمله دومی برات که هیچ کس بغیر از عقیل در صنف فرق است بین جمله اولی و بین دومی؟ یعنی صد میتونه که در نفر باشه. آفرین. جمله هیچ یک کسی وقتی میگیم عقیل در صنف است؟ که شاید امراه عقیل عبدالله محمود حامد دیگر ها هم باشه اما وقتی که میگم هیچ کسی در سن بغیر از عقیل نیست مانایشی است که تنها کیست؟ عقیل در سن خب جمله دومی من میگم که عقیل من تو را دوست دارم در جمله دومی میگم که هیچ کسی را بغیر از تو دوست ندارم ما تو چیست؟ اما این دیگه فلسفه‌دوزه. ما محمد نایم. نایم. خب اینا چی فرق هست بین اینکه مثلا من عقیل میگم من تو دارم و تو میگم که بغیر از هیچ کس دیگه دوست ندارم. مثلا ما این دیگه فلسفه اولی استادمون. در جمله اول شاید من امرای عقیل کسای دیگری هم دوز داشته باشه. عقیل هم دوز دارم، دیگه سینفی هم دوز دارم. اما وقتی که تو را میگم که بغیر از تو هیچ کسی را دوست ندارم، واضح شد که هیچ کسی کس دیگه را دوز ندارم، محباً. تنها تو را دوز دارم. نایم. مشرکین میگفتن که ما الله عبادت میکنیم مانای چی بود کیان در پالوی به امرای الله مثلا میگفتن الله را عبادت میکنیم لکن نظر خدا بر لات میبریم خربانی خدا بر منات میبریم مرغ میبریم در زیر پای هبل ذبح میکنیم باز خونش در پای هبل می میچسونیم می مثل که امروز در افغانستان در زیر پای آروس مرق میکنه میکن همه عادتهای بود قدیمی منطقه با چیره جدید و فکر جدید با تکنولوژی معاصر سهیست نیم؟ اناله مشرکین چی میگفتن؟ مشرکین میگفتن که اگر کس کسان جنجال میکن خدا رو عبادت میکنین؟ بله ما خدا رو عبادت میکنیم مفقه خداوند که عبادت میکنین خیلی ایبوت رو چی میکنین؟ میگفت اینا هم دوستای خدا هستن اینا هم نزدیکای های خداوند هستن ما حکومت ائتلافی داریم بین بوت ها و بین خداوند چی کردیم؟ ائتلاف کردیم یک سلسله پینجه ها فیصد عبادت به الله خیلی یک دو فیصد لات یک سری فیصد بر منات الیا خو میگو فشان کدام مردمای خراب نیستن یا هم دوستای خدا هستن شخصیتای بزرگوار هستن ما که مثلا بریساله اسلام مسیحی رو پرسان کنی بریساله اسلام سجده میکنی خوان بچه خدا از دیگه هوال هم یک شخص بسیار خوب بود اون دوم میگه که رامجی هم بعد اچیاد میتا بودایی ها میگن بودا بسیار شخصیت و دوست خدا بود تا شاید پیغمبر بوده باشه بران ما خو بر نظر خدا برای انسان زش نمیبریم دوستای خداوند بودن یک مقدار نظر خدا برای دوست خدا میبریم چون این دوست خداست این حال یک از غیر باید انسان عقیده داشته باشه که خداوند برای انسان هر چیز میتر لیکن خدایی خدا نمیتر متاجه شده؟ هر چیز خدا برای انسان میتر برات عقل میته دانش میته علم میته زندگی میته دنیا را برات میته سعادت و خوشبختی برات میته جنت برات میته لذت ها را میته هر چیزی که خواسته باشی بخوای از خداوند برات میته اما چیزی را که نمیده‌ کومر بود به ذات خودش است که او خدایی هست. او را بر کس نمیدند از قدرت شرک بدیجی است که انسان تجاوز در عظمت خدایی خداوند میکنه. میخوایی که خدایی خداوند برای کی بته؟ برای یک مخلوق بته این حال عبادت که است ای فقط و معبود میشه و الله میشه از این خاطر در 99 فیصد 99 اشاریه اش 99 هم اگر برای خداوند عبادت کنی اونمو یک آخری که مانده سفر سفر سفر سفر یک. سفر سفر یک اونمو سفر سفر یک که اونمو یک اکه بسیار کم تو میگه سفر سفر یک این اقیق از این امیره هم که بغیر از الله کردی تو در اونمو قسمت با خداوند، اونمو انسان شریک سختی بنان موحدین میگفتن که ایا کن عبودو خواست را عبادت میکنیم شما ببینین تا چل سالگی که حضرت محمد سلام کسر غرز نداشت یک نفر میره پیش حوبل یک نفر میرفت پیش لاد، یک نفر میرفت پیش مناط، یک نفر میرفت 360 بود بود، هر کس میرفت پیش هر بود عبادت میکرد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چی میکرد؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تا 40 سال یک هیچ کس غرازی نداشت. قرار تیر میشد. پیغمبران هم تیر میشد تا 40 سالگی ببینید اون مردن بلات عبادت میکنن، اونو به مناط عبادت میکنه، رو دیگه نظر برد پیشه هوبال، اونو گوسفند حلال میکنه، اونو مرغ حلال کرد، اونو قربانی کرد. مردم هیچ چیز نمیگفتن این مردم بود پرس وقتی که می که محمد صلی علیه شخصیت بسیار عالی است بسیار با تقوا است برش میگفتن که بر ابو جهل میگفتی درباره محمد چی میگفتی؟ میف محمد امین است بر ابو لهب میگفتی محمد چی چی قسماد است؟ میف محمد تخلصش طیب است محمد چطور است؟ میف صادق است کی میگفت میگه پاره برش همین مشرکین همین لخبره برش داده بودند تا چه وقت تا وقتی که حضرت محمد صلیم 40 years شد چل ساله شد وقتی که چل ساله شد آیت قرآن آمد که وانظر عشیرتک الاقربین شروع از اقاره و و بیترسانشانه و بخی برای برای مردم ادعای الاسبیل رب بکر دعوت بکو با طرف راه خداوند بخی برای مردم یا ایو هل مدثر ای کسی که خدا دلیافو کمپل پشندی بخی استاد یا ایوها المزمل بخیر قم عزت محمد سم خیلیست حال مردم کلگی برش میفتن که محمد صادق محمد امین محمد طیب محمد راستگو اتا سنگ حجر اسواد برزی میفتن تو با لبان کلی دیدن که عزت محمد سم برامد درشان گفت که الله لا اله الا الله تفلحو یک دفع ابو جهل ابو لحب گفت چی میگه چی میگی؟ گفت میگم که بگم که لا اله الا الله نسبت به ما اونا عرب بودن اونا از جمله را خوب میفامیدن مانای کلمه را خوب میفامید ابو جهل ابو لحب گفت میفهمین که محمد چی میگه؟ میفهمین چی میگه؟ میگه لا اله لا نفیه کو. سر حوبه، لات، منات، 360 بطه که ما در دا اینجا داریم سر کل ازی ها چلیپا بکش. و میگن نیست هیچ کسی قابل عبادت <تصفيق> نیست. نیست، یکو نیست هیچ لات بال منات عیسی، ملائکه ها و اخه میگفتن که دختران ملائکه های خداوند هستند. ملائکه دخترای خداوند هستند. و او میگفتن که عیسی الییاذ مسیحی ها میگفتن بچه خداوند هستند. و, و بعضی یهودا میگفتن که ازهر بچه خداوند هستند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله گفت یک دفعه مردان خیسن چی؟ مال نظر به دوست خدا نبریم. تو میگی یا نه ما قربانی خدا بر هوبه لکنیم مایی ما سد خدا را بر یک خدا مبدل بکنیم یک دفعه صاحب غال مقال جنگ خیست چه تو کنیم خیست در مقابل عزت محمد صلی الله علیه وسلم گفتن حالی که عزت محمد صلی اللہ علیه وسلم ما را نافی می کنن العیاز برا گفتن تو محمد کذاب هستی لقبای نو متوجه لقبای نو محمد کذاب گفت درو تو ساحر هستی، تو جادوگر هستی، تو دروغگو هستی، تو خراب انسان هستی. اعلیحضرت عبدالله پیغمبر صلی الله علیه و آله با لقب‌های بسیار زشت داشتید این حالا ولم اگر تو بگی من آدم خوب هستم، قرار مثل 40 سالگی پیغمبر واره پیش از 40 سالگیش، قرار خودت بشینی، اونجا از اونجا رقص، اونجا زانو، سالخ میگازن، چادرای گاچ از اونجا مثلا خانمک کدوم یک نفر قراره پاوی خود گرفته رو در روی سرک رو میگه؟ حاجی نگفتی زنا گفتی؟ کلاگی میگه او، خوب مولوی صاحب است، ایک خوب استاد است، استاد بسیار شریف، استاد بسیار خوب، استاد بسیار سنگین، استاد بسیار با شخصیت، کله رو برداشت میاد. اما اگه کسی بر گفتی که او مردم او مردوم، ایک شاعر شمشیر هم‌چهره برای از بچه و دختر دادن نمیتونه. این شاعر شمشیر خودش مخلوق از برای که از بچه و دختر دادن نمیتونه. ای حضرت الله علیه و چشم جور کردن نمیتونه. ای صفات صفات خدای عز و است الله هست که باوتوره بچه میتر نام بچه تا محمد داد نمان محمد بر تو بچه نمان ندار نام الله داد بان خدا داد بان چون خدا بر تو بچه داد او میگه یه استاد دروغ هست یه استاد چطور هست فلان هست فلان هست شست پنج لقب سرت میمونه. سهیست نه؟ از این خاطر ما پیش از چل سالگی پیغمبر سلام وارثش باشیم یا وارث باد از چل سالگی چون مسئولیت ما بود قل هذه سبيلي قل هذه پیامبر الله علیه و سلم حکومت ائتلافی رو در عبادت خدا قبول نداشت آمدن برای گفتن که یا محمد بیا با یک ائتلاف میکنیم ا ائتلاف چه قسم میکنیم یک روز ما خدای کل ما عبادت میکنیم یک روز تو بیا های ما را عبادت کن یاد یقل <سؤال> دیموکراسیست بو تایمارا چیز نگو ما هر چیز که کدیم انتقاد نکن قرار خدا چوب بگی حضرت محمد سمشان آقایت قرآن نازل شد قل بگو یا ایوها الكافرون لا عبد ما تعبدون چطور رو که شما عبادت میکنین؟ ما عبادت نمید ولی انتو ما عبدون ما اعبد ما هنچریک شما ابدات میکنی ولی آنتو با بیدونه شما همی ابدات نمیکنی چریک ما ابدات میکنم بلاخر باز داره آخرش گفته لکم دینو کنم ولی یه دین شما دلتن دیریت هم داره دینی ما از دین شما چیز پایبی کردن نمیتونم ما گفتم میروم که دین تو باطل است، با تو باطل است خاموش نمیشیم دلتن کرده میگه دینان که برازیم نشدن گف خیلی یکار یک میکنیم که بیاین یکار یک دیگه میکنیم کی ازت مه ماست السلام تو وقتی که ازدواج کردی بیست و پنج ساله بودی خیس چل ساله را گرفتی او خانم بیوی بی بود که شوهر اولی فوت کرده بود شوهر دومی شام. تو خیز یک چل ساله را گرفتی و باز بعد از تو که او فوت نکرد تو چیز ازدواج نکردی و باز که ازدواج کردی خیز یک خانم را گرفتی شست دو ساله را اون مسلمه را چی سرور بیا که ما برات یک کار دیگه میکنیم از هر قبیله یک دختر زیبا را خوش میکنیم 8 ساله، 19 ساله. و فکر میکنن که پیغمبر خدا الا عیاذ بالله مثل کالا بعضی مردم ها فکر میکنن پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی که خانم 60 ساله را میگرفت یا 55 ساله را میگرفت یا مثلا بیبی بی عایشه گرفته یا به خاطر عزی بود که میخواست که دیار مقدس اسلام متوسل از خانم های خود برای مردم برسانند. پیش پیغمبر مطرح نبود که ایش 60 ساله است یا 50 ساله است چون او به دین فکر میکرد. میخواست که اینا رو در سدیره بت بازی ببرن بر برسانن از این خاطر بزرگترین معلم حدیث بیبی بی عایشه بی رضی الله تعالی عنها بود بسیار احادیث خانگی نقل کرده بزرگترین استادا که بودن خانمای پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سلم بودن بعض گفتن خیمه برد بهترین دخترارا را تیم پیغمبر خدا گفت نه نه نه, نه. گفتورت د اکاونت نمبره هر ما خوب با بر حواله کرده میریم. های کفار کوفرس همیشه گفت خای اینو مگه قبول نمیکنی ما تو را به صفت رئیس دار ندوه که او وقت موقفه رئیس جمهوری یا صدرازم داشت. با قراره میگیم خلاص کل قبال کل مردم که از تحت قیادت دوست رهبری دوست خلاص تو مهم نیست که تو قواره چه رنگ است برای کفار مهمی است که تو برنامه از اونها را قبول بکنی اگه دش چپتراش میکنی یا یک متر میمانی نو no گرسی رزیز که برنامه ما را قبول کن پیغمبر صلی الله علیه وسلم برش گفت که والله قسم با خداست که اگر آفتاب به دست راسم بتین و محتاب به دست چفم بتین که من این دین ترک بکنم من ای دین ترک نمی کنم من این توحید ترک نمی و این تبلیغ خدا ترک نمی کنم دلتان این کار شماست اما من این کار را نمی این مردم فاهمی که اوه اوه او چهارمی سلاحی است تهدید و قتل است بالاخره خیسون گفتن این خلاص مشرکین و کفار همیشه توریست هستند در طول تاریخ تاریخشان تاریخ, تاریخ سیاه تروریسم است آقا مثلا تبسمیرا گیر کردن بی بسمیرا یاسرا گیر کردن و عمار سه صحابی مبارک از یک فامیل بودن مادر پدر و پسر شهید کردن و گفتن دیگه قسم نمیشن خلاص با کشتن و بازدن و باز بلاخره بلاخره ابو جهل گرفت اولین شهید اسلام میبیستو مایره به شهادت رسد این حال مشکل در چی بود؟ شاید بر یک نفر سوال پیدا شه که این مردمایی که خدا را عبادت میکردن، خدا را مشناختن و میفتن ما عبادت میکنیم، خیلی را مخالفت کردند با پیغمبر یا مخالفت شان در موجودیت خدا نبود که بگویند که خدا نیست ما عقیده داریم که خداست. خیلی مشکلشان داشتی بود، مشکلشان داشت بود، مشکلشان لا اله الا الله بود. چون کاتِلَ اللهِ إلا الله، لا اله یعنی نیست هیچکس قابل عبادت، مجبور که است و خدا بشکنند. از این خاطر اگر تو میخواهی که مسلمان واقعی شوی باید محبت بت از قلب دور کنی از غیر الله من دون الله خود دور بسازی در اون صورت تو موحد هستی اینا توحید در عبادت چیست توحید در عبادتی است که یک انسان مسلمان موافق با ایه کان اعبود و عبادت خدا خاص برای کی بکنه با الله جلال جلاله توحید شرک در عبادت چیست شرک در عبادتی است که نمازت با الله بخوانی نظرت با بت قربانی تا بری باز بر زیر پای یک انسان کنی رکوعی ته برای یک انسان بکنی سجری تا برای یک انسان بکنی دست دعا برای یک انسان پیش کنی بگی فلان جان مرا بچه بده مرا دختر بده وقتی که این کار کردی چرا اینا باید بفهمیم که چی عبادت است که او باید مخصوص الله شود نماز عبادت است نیست رکوع عبادت است ورکا و این خداوند میگه رکوع بکنیم امرای رکوع کنندگان پس رکو عبادت شد نشد آیا ما حق داریم غیر از خداوند برای یک کسی دگر بر فوتیفار و بر انخباو و بر فلانی رکو بکنیم ها؟ کنیم چرا؟ چرا که رکو که اصل مشریکین سر تعظیم بر بغیر الله خم میگن او فلانی اما مسلمان میگه سبحان ربی العظیم عظیم و ربکم تعظیم بر الله هست سجیده خداوند مگه سجده کو تا که با بارگاه خداوند قریب شوی بناهن بغیر از خداوند کسی دیگه نیست که سجیت را قبول بکنه و حق نداره که سجده را بغیر از الله بکنی وقتی که سجده بغیر از الله رفتی د زیر قدم یک مخلوق به هر نیتی که کردی تو عبادت کردی چون در سجده و در تعظیم و در یکپا نیت مهم نیست مجرده که رفتی سر خدا پیش بت یا پیش یک قبر ماندی یا پیش یک انسان سر موندی تو بر از سجده کردی و سجده عبادت است و وقتی که عبادت کردی در عبادت خداوند در عبادت خداوند انسان را شریک ساختی چون خداوند میگه که تو اگر میخوایی خدا قریب بسازی به خداوند وسجود وقترب سجده کو به خداوند قریب پیشی سجده انسان رو خداوند قریب میستن. وقتی که دعا میکنین خداوند متعال میکنی که ادعونی. دعا بکنین برای من. از ما بخوایین. ادعونی دعا بکنین برای من. بخواین. از ما بخوایین از تجه من اجابت میکنم. لکم برای شما. الان یک نفر میگه که عزیز خاطر برادر عزیز یک یا که بسیار که نمی‌فهم این معقول است یا چیست میگن که بسیاری از قاری‌ها قرآن میخوانند ولی قرآن را چی میکنند لعنت میکنند چرا به خاطر از اونجا اونجا در قرآن میگه یا کنابودو خدای خواست را عبادت میکنیم باز اونجا برعکس از اون میره عبادت رکوع خدا برای کسی دیگر میکنه سجده خدا برای کسی دیگر میکنه نظر خدا برای یک انسان میبره تو گفتی که یا کنابودو حال بسیاری اوقات کسای هستن که قرآن هم میخونن و بسیاری مردم به برانستان غلط قاری منظور از قاری اینجا حافظ قرآن نیست یک نفر قرآن حفظ کرده باشه منظور از قاری کسی که قرآن تلاوت میکنن هر کسی که پا شاید چپس نکرده باشی از روی خانده بری بسیاری کساس خوب میره نمازم میخوان. الحمدلله رب العالمین رحمان رحیم مالک یومی دین سعی کن حمد و صنا و صفت خاص برای کیست؟ برای الله که رب العالمین است باز اینمی نفر وج الحمدلله رب العالمين اخوان وقتی که نماز خلاص کرد بس تامبورگک هم میمونه و هارمونی و, و آکاردین زده میره باز میگه او فلانی خان بس برعضو خواندن کرده میره که تو بسیار پیرهجمیر تو بالا تو bohat acha تو سبز سے تو فلانی میگن نمیگن پس اینا رو تر ازی نفر اگه قرآن بخونه قرآن سش لعنت میکنه نمیکنه وج میگه که هم مخصوص خدا بنداست اونجا میگه دیگه نفر هم میگی وج میگه الرحمن الرحیم خداوند رحمان و رحیم است وج خداوند از شریع گردن بر نزدیک از ای بود یا الله بر من بچه‌بتی وج میری میگی شاد شمچرا مهربان است اول باید من پیش شاد شمچرا بروم واسه شاد مرا به خدا ببرم یعنی از الله که شاد شمشره بر تو مهربان تر صلی الله متوجه و آله مترجمی شده الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کن عبودو و ایا کن در پنج وقت نماز موتو همیشه ایده به خداوند تعهد میکنیم اما در زبانت همدگویا در دلت پیدا سنن ای باباتن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود؟ وچه قرآن شریف میخونی وقتی که از قرآن شریف خلاص شدی برعکس قرآن حرکت عرکت میکنی از این خاطر موحدین ما و شما امت محمد صلی اللہ علیه وسلم استیم الحمدلالله و در وجود ما و شما شکر شرکبرک نیست ما تقلیل از, از پیغمبر خدا و آل بیت پیغمبر و صحابه کرام میکنیم فقط عبادت خدا برکی میکنیم به الله جل جلاله و در عبادت خداوند هیچ کس را شریک نمی‌کنیم نه رکوع می‌کنیم برای انسان نه سجده می‌کنیم برای کدام مخلوق خدا کنه که رتبهش هر چیز باشه ما حضرت محمد صلی الله علیه و از مادر پدر فامیل اقارب از کلیه کلا ما حضرت محمد سلام دوز داریم چون پیغمبر ماست اما حضرت محمد هم رکوع نمی‌کنیم و حضرت محمد هم سجده نمی‌کنیم برای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به نام محمد نظر نمی‌دینید بر زیر پای زیر قبر حضرت محمد سلام قربانی نمی کنیم گوسفند حلال نمی کنیم چرا چون حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خود ما میدیم که اشهد و شهادت میدهم که ان محمدن که بدون شک و به تحقیق محمد سلام است عبده هو بنده خداست و رسول خداست پس ما محمد است و آله بنده خدا و رسول خدا و یک شخصیت عالی میشناسیم و هر کسی که پایین‌تر از پیغمبر بر الله علیه و آله بیتش از صحابهش است با کل از اونها احترام داریم جای کلشان بالای چشمای ما لکن برایشان رکوع و سجده و قربانی و نظر نمی‌کنید عبادت خدا فقط بکی کی و الله میکنیم خلاص از این خاطر ما امت محمد صلی الله علیه وسلم این شد توحید در عبادت فهمیدنی یا و شرک در عبادت نقطه چارمی موضوع استعانت است موحیدین در استعانت چی میگفتن موحیدین در استعانت میگفتن که ایا کنستعین یا الله فقط از تو کمک میخواییم یکی ایست که مثلا برای یک نفر بود که از تعیینو که به خداوند میگفتن مشککن که خدا از تو کمک میخوایم لکن از یکان کسی دیگه هم کمک میخواهییم اما تو خ راد که نه نه نه نه ی خدا قبول نمیکنه. فقط بود که این یاکنین خدایا فقط خاص از تو مدد و کمک می خواهیم. یا الله فقط از تو کمک میخوایم خاص از تو کمک میخوایم از کسی دیگه کمک نمیخوایم از کسی دیگه کمک نمیخوایم چرا از خداوند کمک می خواهیم بخاطر ازی که از خدا که در نه کسی بر ما نزدیک است و نه کسی مهربان متوجه شدی مثلا اگر تو پیش ما و تو بفهمی که من استادت هستم و استاد مثل پدر مهربان است و احساس بکنی که من استادتو هستم و مهربان هستم آیا تو بر ما واسطه میاری؟ ایش کسی دیگه میری که بیا پیش اوستاد مرا نبره اما اگر در وجود ما شک کردی گفتی اوستاد ظالم است مرا نبره نمیتر مجبور چی میکنی مستبرم. این حال ما وقتی که استعانت مشکل داریم خداوند میگه اما یو جیب المطرر ادادا کی میتونه وقتی تو مشکل داری و مشکل تره در حالت استراری و در حالت سختی کی میتونه مشکل تره مشکل گشا باشه الله جل جلاله. پس ما پیش خداوند چرا میرم؟ خاطر از اینکه عقیده دارم که هیچ کسی از الله کرده بر من مهربان تر نیست شاید پیغمبران مهربانی داشته باشن به اندازه کوها اما مهربونی خداوند ما حساب کرده نمیتونیم و خداوند بر من از شارع گردن نزدیک است یک کسی سوال میکنه خب وقتی که من مشکل داشتم چه قسم؟ کمک بخواهیم خداوند خود گفتی تو, تو میگم که ایا کنستان چه خسم از خداوند کمک بخوایم میگیم خلاص باز به با قرآن مراجعه بکن قرآن از یه چی میگه میگه وستعینو به صبر و سلام شما کمک بخواین با چی اول صبر بکنی متوجه شده وقتی که برد یک مشکل پیدا شد اول با چی بکنی باد از او و سلام خداوند میگه باد از ای چی کن اما چخزم چرا نماز بخوانم میگه به خاطر ازی که نماز گف زدن است ارتباط گرفتن است مستقیما با کی به خداوند انشاءالله شد پس 12 بجا شو تو وضو کو سر جای نماز ساجو وقت مشکل از خداوند بخو اونجا گفتی در صفاری اول میگه که ایا کر نسترین بگو و در صفاری دوم چی میگه واستعینو ساریاس پس ما ضرورت ندارم که بخیلین دست این مسائل فلسفه بگویم گر همه خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن وقتی که میخوایی که تو انسان موحد باشی و پیره و محمد و آل محمد و اصحاب محمد باشی تو فقط یک را بیه که و او راه است که قرآن از اینشان در قرآن نکست دست زدن از دست زدن میتونن حتی در احادیث مردم دست زدن بعض احادیث دروغی هست بعضی ها به حساب قوم پرستی و مذهب کارستی و, و سیاست پرستی و ایگه بعضی احادیث دروغ ساختن و به پیغمبر نسبت دادن حالا مثلا ما عمی... ما شما اکثر ما در مذہب امام اعظم ابو بخریفه هستیم نی؟ پیدا شدیم در خانه یک حنفی خلاص می ما حنفی است. یک وقت متعصبین احناف گفتن باش که ما نسبت به دیگه خود، برتر بسازیم خیستن تعصب بیاره سبب کفر کافر شدن گفتن پیغمبر گفت که ابو حنیفه چراغ امتی ابو حنیفه چی است چراغ آفتاب چراغ امت است پس ما به خاطر از مذهب حنفی قبول داریم که پیغمبر گفته که ابو حنیفه سراج امت است علما آمدن ما آمدیم در کتابان خانم که بزرگترین از علماء مثلا از علماء اهل سنت مولا علی قاری که بزرگترین عالم است میگه که در کتاب کرده که این حدیث متاعصبین احناف جور کردن کسی که سر پیغمبر دروغ بگویه فلیتبوا ماقدو من النار کسی که حدیث ساختگی به پیغمبر نسبت بده اینمی سبب رفتنش و دوزخ میشه اون نفر که این حدیث ساختگی را ساخت او دوزخی است ولی ما شما میگین که این حدیث چلیپاسته میگین این حدیث نیست ایش ابو حریث اسراج امتی پیغمبر ما گفتن. نگفته نگفتن. کسایی که مذهب پرستی و قوم پرستی میکنن یا سیاست پرستی میکنن یا شخص پرستی میکنن اونا به شکل از اشکال خود از دین میکشند. اما ما که مسلمانای موحد هستیم دروغ هم میگیم دروغ است، راست هم میگیم راست است. عقیده خود از کجا میگیریم؟ مستقیما از قرآن عظیمشان. چون در قرآن عظیمشان خداوند گفته که من حفظ میکنن. کسی در قرآن دزده نمیتونه شاید بسیار کوشش ها کردن زیاد کوشش کردن لیکن رسوا شدن کسید حتی یک حرف قرآن تغییر دادن میتونه. یک حرکت قرآن تغییر دادن یک مولوی بسیار بزرگ در نماز بخیجه خوب همه بگه بگه الحمد لله کل یکی از سلام میکره مولوی سوی الحمدو دار پیش دوست میگه ها یک بچه که خوردم از پشترش غلط کردی غلط کردی اثر بخور نماز الحمدلله است الحمدو هست چرا چون خداوند مطال جل جلاله زمانت کرده که این قرانم حفظ می چه قسم می میکنم؟ این یعنی ال کتابی که در قلب میلیون ها انسان حفظ است کدام کتاب است دیگه کدام کتاب هست شما که انجینری می خوین کدام دانش ای... استادای آمریکایی تان کدام تا هست که کتاب انجینری از اول تا آخر حفظ داشته باشه نه بابا کدام کسی هست که مثلا 10 نفر بگه ما بایبل از اول تا آخر رو زاید داره نیست آ تا کشورهای اروپایی 100 نفر پیدا کرده نمیدون تو مثلا از سوال آمریکایی پرسان که بگه آیا 100 نفر یافت میشه در جهان که بایبل از اول تا آخر کتاب شما رو داشته باشه نه اما بگوید قران ما که هست این نمیاله میدر... کوته سنگی داداره به کوته سنگی بیشی کوته سانگی کوته سنگی والا بو بخشی بیدار؟ خواهش میکنم همین شراط صرف جمعا دین ابغانی دیدی؟ مرکز بخش مرنشت سری های سنو میره میگی؟ وله وله وله آنه سرک اول پس چپ مرکز کتاب روشیه کابول همون جاست تشکر بیدار او سات اول که پوان میشو سی خو با شرط سید جمرالدینی اپونی اولین و پذرترین مرکز پارشیناش سی دی دی وی کاتد های تایپی کتاب و مجلات اسلامی در شهر کابل می باشه. ات آدم کشورهای اروپایی 100 نفر پیدا کرده نمیدون تو مثلا از آمریکایی پرسان که بگو آ 100 نفر یافت میشه در جهان که بایبل از اول تا آخر کتاب شما را حفظ باشه؟ نه. اما بگو در قرآن ما که هست اینا میلمین در حدود 6 میلیون حافظ قرآن است در جهان یوم که نامش بر شاند اسیده عیسایا 6 میلیون و هر روز حافظه قرآن زیاد شده میره و هیچ مسلمان نیست که در قلب ازو یک قسمتی از قرآن حفظ نہ باشه. حتما 4 سوره 5 سوره در سوره 20 قرآن شریف هر مسلمان حفظ کرده. اما دیگه هیچ کتاب نیست که از اول تا آخر رو که حفظ داره شده باشه. بناً ما عقیده خود از کدام کتاب بگیریم؟ از کتابی که کتاب خداوند است. صفات خداوند از چی میگیریم از کتاب خداوند میگیریم عبادت خداوند از کجا یاد میگیریم از کتاب خداوند میگیریم طریق عبادت از کجا یاد میگیریم از خود کتاب خداوند وقتی که بگو بر ما یا کرستای فقط از خدا کمک می خوام بینون زبان ما یا الله تو بر ما بچبتو یا الله تو بر ما دختر بتو یا الله مشکل ما تو رفع بکن یا الله ما مشروط میشم خدا تو کمکم کمک و کامیاب شوم یا الله اما بسیاری به واسطه الله و دولا داخل کتاب نخوندم میرفم شاد شم شیره شم جو جان, جان زوال و میگه برو کاکا مگه اگه تره کامیاب کردم میتونستم خودم میخستم میرفتم انجینیری میخاندم آلا اگه من بتانم خود... کسر کامیاب کنم شاهاتناما بر تو بگیرم چرا به خود نگیرم اول اگه من قدرت داشته باشم که از صرف پنج انجینیری شاهاتناما بگیرم ایواز که برای بیجن بگیرم چرا به خود نگیرم برای خود میگیرم که ما هم بگن که او استاد مهندس پوهنمال ها بشوین نامم یک دار انجینیرم ساخت می کردم ها اما زورم نمی رسد سبب من مردم یک لاودا میاد پیش قبرم گذشت جان مرا کامیاب گفت من برادر من خودم بر انجینیری دادا نمیتونم حالش از شم ما انجینیر گفتم میتونیم ها نتان دکتر گفتم میتونیم میتونیم گفت ها گفت ما برای هرکس خب ایناله توحید در عبادت در استعانات فهمیدیم یا توحید در استحانت چی بود که ما فقط مطابق ایاکن ای عبدو و ایاکن ای از کمک فقط از خداوند بخوایم مشرکین چی مشکل داشتن در استحانت مشرکین میفتر که نیواله تو و بحل و منات یا دوستای خداست چیستن اول ما پیش دید دوست خدا میرم بازی دوست خداوند من رو خدا چی میکنن نزدیک میسازه. یواسه ای تمیشه این عقیده مسیحیاست که یک نفر نمیتونه مشکل خودم مستقیما به خدا بگویه اول باید بری پیش پاپ پیش فادر مسیحیا چی عادت دارن مسیحیا وقتی که میرن در مسیحیت در کلیسا یک دون صندوق مونده این صندوق هست در پیش صندوق یک نفر از بنامه نام فادر برام چی هستن توبیا مثلا این فادر است، for example. این هاله، در قرار دستندوک دا دا داخل کلیسا استاد است. این آفرمای که گناهگر است، من پیش از بزرگی فادن، I'm criminal، I'm guilty. ها؟ ما است، مامو است، please forgive me. من رفتم بخش. ای بزرگی که، okay، okay، I will talk with the God in midnight. من بودن نشون قطع خدا گفت می جنم. and I will tell you tomorrow باز مطره I will tell you tomorrow okay God, okay Father, please <laughs> and also say مه که می رو مه قرار شب سوکی می آیم باز Father, what did you do? did you talk? آیا تو که زدی کس می oh yes my son I talked with God God forgive you خدا ها تو بخشید آکی نو گیو می 500 دولار البته رو بخشیدم چال دیگه نه؟ چال نه؟ نی این چال ها مزار جور کردن. ایشان مزار کسی پیش بیری نه زیده پر تو پر تو نه زیده ویجه قرار ده ده موبایل ده موبایل گیم بیزه نه دو تا ایشانک ها اله میگه آمد اله اله خالگه گیرش کردی خاله بچه را پر تو خاله نه چا بم چم 1.20 از 1.25 پیسدی برتو. پات چك پنسدی، اگنی دوایت قبول نمیشه. اگنی؟ خو ما پیسہ لري پنه پی دارم، دوای خدا قبول نمیک. خدا تنها دوای کسره قبول میکنه که پیسہ است. ها؟ اینه حال اینجا مشکل پیدا میشه برای برای برای کی؟ برای کسایی که چال جور کردن، فرج جور کردن. خدا در قرار دادن. خدا بین خود بین مخلوق و بین خالق چی کردن خدا قرار دادن به خاطر اینکه جیبای خدا چی کنن پر کنن اما ما مسلمان ها و موحدین از رسول صلی الله علیه و گفت که اذا سالک خداوند متعال جل جلاله او برجان گفتن این مسیحی چی میگفتن میگفتن خب خی وقتی که شما اسارت اینجا واسه ما این سر یک نقطه دیگه است که موضوع نزدیکی میاد ما موضوع پنجمیه موضوع نزدیکی مشرکین در نزدیکی خداوند چی عقیده داشتن؟ و موحدی مشرکین چی میگفتن؟ تکو مشرکین همیشه خداونده با مخلوق تشبیه میکنن مشرکین میگفتن که مثلا پادشاه هست پادشاه وقتی که من پیش پادشاه میرم مجبور استم پیش سکرترش برم پیش رئیس دفترش برم مجبور استم پیش بادیگاردش برم مجبور هستم پیش یکی از اقاربش برم بازی ها قریب کنه با کی؟ به پادشا مشرکین چی عادت داشتن؟ میگفتن که خداوند هم تشبیه میکردن با پادشا علایه عزو بله میگفت این همی کسی ما پیش پادشا از طریق اقارب دوستاش میرم مجبور هستم پیش خداوندم از طریق سکرتر رو رئیس دفتر روش فلانی فلانی برم چی هستی این مردم ها ما هستن لات، منات، حوبل، رام، کرشنا، فلانی، سیتا، گیتا، فلانیه این میگه مگه این اشخاصی که اینجا هستن مگه یا ما را به خدا چی میکنن؟ این و قرآن بر ما قصه ایشان میگه میگه مشرکین چی میگفتن مشرکین که میگفت که شما وقتی که الله را عبادت میکنید ولی الله را عبادت میکنیم تو ده ده ده محمد و تو اصحاب محبت و علامه محمد ما را کافر فکر کردین ما خدار عبادت میکنیم ابو جهل ابو لهب یا کلشان میفهمین ما خدار عبادت میکنیم الله را عبادت میکنیم میفهمی وقتی که الله را عبادت میکنین خیلی پیش ازی بطه چرا میرن و کست اجرا میکنین؟ چرا برای بطه نظر میبانین؟ میگفتن که ما نعبدو هم سرکت دلیل شادم ما نعبدو هم ما اینا را عبادت نمیکنیم الا مگر لیو قربونا الله یا ما را به خداون چی میکنن؟ قریب میکنن لیو قربونا الله یا ما را به خدا چی میکنن؟ استیک میکنن خب به عقیدهشان چی مشکل پیدا شد؟ که خدا را دور فکر کردن خدا را چی فکر کردن؟ دور فکر کردن آل بیت صحابه عزت محمد الله عليه علیه سلام خدایا تو برای ما حکم بفرست خداوند متعال بر عزت محمد صلی اللہ, محمد صلی اللہ گفت که اذا سألک اذا سألک وقت که سوال بکنن از تو عنی در من باشید من روشتا کنم براتان آیت قرآن این قسم میگه اذا سالک اذا سالک بگوین اذا سالک عبادی عنی فا اینی قریب خبتان میبرن بگوین اذا سعلا که عبادی, عبادی عنی فا اینی قریب مانا شیست اذا سعلا که وقت که سوال بکنه ترا ای عزت محمد صلی الله علیه وسلم اذا سعلا که عبادی بنده های من چرا بنده های من گفت؟ یکی بنده های بوت هست بنده های خواهشات نفسی هست بنده های فلسفه هست بنده های افلاطون است بنده های سقراط است ربان اما بنده های مخلص من که وقتی از تو پرسال کرد اذا سالک عبادی انی وقتی که بنده های ما در مورد من پرسوان کرد نی قریب من به بنده خود چی نزدیک. نزدیک هستم نزدیک مستی پس وقتی که خداوند نزدیک باشه چیزی جور است که پیش بوتابریک تا نزدیک بشه و در آیت قرآن ده آیا چی میگه ده آیه دیگه میگه که من حبل الورد و نحرو اقرب و الیه من حبل الورید مگه ما برای بنده خود نزدیک است از چی؟ کجا گردن؟ تو بخی نشان بده داری؟ کوکه؟ کو؟ این این گردن است یعنی میگه که خداوند از چی که برای انسان نزدیک است؟ از شارع گردن کده برای انسان نزدیک است؟ خب وقتی که خداوند به ما نزدیک است و از شارع گردن هم کنه بر ما چی است؟ پس ما چیز ضرورت داریم با کسی دیگه ها؟ چیز ضرورت داریم انالازی خاطر بر از اینا گفت اول گفت خداوان الله سمد خداوان چی هست به نیاز است. یعنی نیازی به کرتر و رئیس دفتر و بادیگارد و وزیر و فلاری نداره که تو پیش از او بری سهیست نه ایش یکی دومی چیسته؟ گفت که ازا سعرک عبادی انی وقتی که بنده های من دباری من پرسان بکنم و چیستم؟ قریب نزدیک است و باز گفت که از شارع گردن نزدیک استم الان تو چرا ذاتی که برای تو نزدیک است؟ او را ترک کرده پیش اک... یک از تو دورتر از پیش از میری؟ ایناله موحدین چی کردن؟ موحدین میگفتن که خداوند متعال جلال جل بر ما نزدیک است بنا انما بست و رئیس دفتر و حوبل و لات و منات و فلان و فلان نیازی نداریم اما مشرکین امی اقیده رو نداشتن متاسفانه مشرکین چه میگفتن؟ مفتنه خداوند از ما دور است ما پیش ازی بطه میریم ما روی هستیم ما رو خدا خوش نداره ما شرمنده هستیم ما خراب مردم هستیم میره پیش دوستای خدا که و پیش خدا رویدارتر است بنابراین بین خود و بین خدا نفر سیومیره چی کردن؟ فاصله ایجاد کردن فاصله ایجاد کردن اینی ایجاد کردن فاصله سبب شرک از اینا شد چرا کسی که بین خود و بین خدا نفر سیومیره میره وقتی که من مشکل داشته باشم امرای تو چرا مستقیما بر خودت نمیگم؟ بخاطر ازی که شک دارم که تو مهربان هستی تو مهربان نیستی پس میرم پیش عقیل میرم میگم عقیل جان نام تو چی است محمد امین میگم عقیل جان محمد امین پیش شکار بند است فا می دیدی کارم پیشش بند است و این محمد امین که است میگه که من مهربان هستم لکن من باور ندارم که مهربان است بسیار ظالم است ولی اثر هم سلفیت است رفیقت است تو برو برش بگو که امی کار از این نفره سلام وقتی که عقیل را بر گفت ما میکرد از این رفتم چیچان سلام علیکم ما همی دونسته برات آوردیم همی کار مرا بکن در دل یعنی چیز یعنی که تو ظالم هستی تو خاین هستی تو خدا ناترس هستی تو رشوت خور هستی تو حق مرا نمیتی من مجبور بسیم برای چی نمیارم نفر سیومی نیست مهربان نیست اما اینی نفر که هست در اینجا کارم است. وقتی که من میرم میفهمم پیش خود این آدم بسیار آدم شریف است با تقوا هست از خدا میترسه میفهمم که عقل خوب آدم است لکن برش میگم که سلام علیکم شیطان خوب است جان دجاست هم یری جگہ که من سمیر دیگر که من رو خیمزا میگه با کمال می من را رخ... اصاله پای میگه خیر است اینه به برتانم چرا ما برای زی اومدم مشکل خدا مستقیما گفتم در مهربانی ازی شک نداشتم اما مهربانی ازی <تصفح> دایشون ده وقتی که بفرمایید وقتی که من خداوند متعال 24 سال میگم که بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله که چی هست؟ نهایت بخشاینده و نهایت مهربان است. اتو تو خدای است که بر سخت سخت دشمن خود بهترین لکس موتر میتر خداوند مهربان است. شما ببینید بر سرسخت ترین دوست خود چی نمیده؟ بهترین موتر از دشمنهای خداست بهترین خانه را برش میتن میگه میشه که یک روز اینمی نفر های خداوند سر خود حساب کنه، یک روز توبه کنه و رجوع کنه با بارگاه خداوند از این خاطر؟ هرقدر که گناه بشتر کنی، هرقدر که گمراه باشی، هرقدر که در نماز جماعت هر هرقدر که نماز هر هرقدر که تو خدا جنگی باشی و خانه خدا نری، بازم برتون موتر لکس میتر، خانه لکس میتر، نان خوب برات میتر، به خاطر که خداون رحمان رحیم است میگه من مهربان هستم، این خاطر بر کلگی کل نعمت میتون میتوم تاکیش کنم. اناله خیمه وقتی که میگم که خداوند رحمان رحیم است آیا از خدا که بر من کسی دیگه مهربان تر از خدا واسطه کنم کیست کیست بگویا که او از خدا کد مهربان تر است تا من پیش مهربان تر برم نیست هیچ کس وقتی که نیست سعی سائکل یک طفل و مادر خودش قدر عقیله داره یک طفل با مادر خود چیقدر عقیده داره مادرش که سیلی میزنش باز داغوش مادر میره باز که سیلی میزنش باز داغوش مادر میره باز که سیلی میره باز داغوش مادر میره بالاخره مر... پنجم مرتبه مادرش ای طفل خواهد در بقل خود از بغل خود میگیره میگه که خیر از باچم سقبان سرد صد قیسرد خون نباش اینا. اینا رو چرا این طفل پیش خان زن همسایه نرفت چون میفهمید که از مادر کنه اما اگر مادر اندر باشه که یک داشت دویده دویده میره پیش کی اگه سلیزاش دویدا دویدا ميره زن پيش زره خاله خال اون ما دارن در مرو ميزنه تیز دي بازم ميباشمه كه وي فلاني جان چرامو با شاكه كه تلارت كه دي گناه داره يتيم است مادرش مرده يا يسير است مگه نه مگه پس انال تفل عقیده با مادر خود چقدر عقيده داره اگر ما اينم قدر عقيده تفل كه با مادر خدا راه ميقدر ما با الله ميداشتيم که هیچ وقت مشکل بغیر از خدا پیش نمی نمیرفتیم خداوند تمام مشکل های ما را رفع می کرد ولی مشکل هست که بسیاری کسا در مهربانی و نزدیکی خداوند خودش خود میگه خدا مهربان است راکن در دلش کم کم شک است از این خاطر میگه یک کس دیگه باز میگه تو با خداوند مرا نزدیک بساز خدا تو هم دو تا چشمی دادم منم دو تا تو هم خدا عقل داده منم عقل دادم تو هم کلمه می هم کلمه میخانی. از وقتی که خداوند سر کل ما مهربان است بر کل ما دو چشم داده بر کل ما اینمی دو گرده داده بر کل ما سهت داده شفا داده در عقل داده درست بخوانیم، خلاص از این خاطر ضرورت نداریم به واسطا واسطا بازی انال ای شد در ازیگه ششمیش که از توحید در افعال است انال توحید در افعال چیست؟ توحید در افعال توحید در افعال چی است؟ توحید در افعال ای است که ما مسلمان ها عقیده داریم که خداوند مطال الله جل جلاله خلق کننده ماست روزی دهنده ماست خلق کننده یعنی خالق هست رزاق روزی دهنده هست میراننده محی زنده کننده ما کی است؟ الله است، زنده کننده ما محی چی مانه محی؟ میم حی یا یا چی موحی زنده‌کننده کی است؟ زنده زنده زنده الله جل جلاله. بگویید موحی کی است؟ زنده‌کننده کی الله. میرانند مومید کی الله ما مسلمانان عقیده داریم که رزاق الله روزی دهند الله. موحی کی است؟ زنده‌کننده الله است. الله است. شفا دهنده شافی کی الله امنافع عبدار ام ما شما در صفات خداوند می خورید نفع رسان که بر ما نفع برسانه ما را صحت بته شفا بته عبدار که بر ما ضرر برسانه ما را از بین ببره دست ما را پای ما را کل ما را وجود ما را ما را نابود بکنه این وقتی که یک مسلمان عقیده داره که افعال مخصوص خداوند است بناه ان موحدین افعال خداوند از غیر مخلوق نمی خوری. از غیر خداوند از مخلوق نمیخواه وقتی که من اولاد کار دارم مشکل دارم میفهمم که الله محی زندگی کنیده هست پس بارگاه الله رجوع کرده میمیم خدا تو برم بچه بیتی تو برم دختر بیتی وقتی که میفهمم که خداوند شفاق دهنده است، پیش دکتر میرم دکتر دوام تا از جمله اسباب در عالم اسباب آدم از اسباب استفاده میکنه ولی شفاق هندی عقیقی است. به خاطر از که در بین شفاخانه مرده خانه است نش اگر اگر دکترها میتوننس مردمش شفا به تخجیر در دا داخل شفاخانه مرده خانه مردخانه بود مرده خانه به خاطر چیز دکتر صاحب پرسانیم میگیم دکتر صاحب اول شما میگین که ما نام ازین ماندی شفاخانه خارجو در بینش مرده است میگه به خاطر ازی در بین ازین است که ما دوا میتیم سبب هست از دوا تداوی عملیات میکنیم لکن شفا الله میتیم اگر شفا داده شه خوب میشه اگر ندادش میمورم میبریم جمعورد خانه چون شافیکی کی هسته؟ الله هست به انسان موحد در افعال خداوند کسی دیگه شریک نمیکنه کسی دیگه شریک نمیکنه که تو بر ما بچه بتی یا دختر بتی یا تو مثلا مشکل من را رفع بکن چون کل ای ما عقیده داره که کی میکنه برای ما بچه و دختر و زندگی کی میتن؟ الله جلال جاله هم میتن از این هست. اما کسانی که الله ها شک دارن بقیه به پیش غیر الله میرن پیش بود میرن پیش مخلوق میرن پیش انسان میرن تو برم بچه بده تو برم دختر بدی تو کفترجان برم زرار میرسانی کفتر باز نامش تو خودم کفترو میمونن فکر میکنن که کفتر برای و شتک داده باز نامش چی میمونن رو. در حالی که کفتر ویچاره کفتر بیچارا غم خودا خورده نمیتونه بسیاری کسا با سنگ و چوب عقیده دارن مثلا فکر میکنن که والا این, این مورگکا ذره را دور میکنه در سر بار بند داشته خود یک در بند میکنه او اولاد خدا به خدا نمیسپاره به کی میسپاره به مورگک میسپاره کسی دیگه خانه جور کده خانه خدا به خدا نمیسپاره به برق سرخ میسپاره اینه در سر تعمیر خدا کنم. کمی بیرخی در از نظر پرته ای عقیده خدا ایوازی که بگوید خدایا تو ای خانه من را حبس کبر تو تسلیم کردیم؟ ای باقی تسلیم میکنن از این خاطر مشکل پیدا میکنه. خب دگه توحید در چی است توحید در قانون است در قانون است در قانون توحید چه قسمتی است که ما موحدین آزاد محمد (ص) آل بیت پیغمبر صحابه کرام عقیده داشتن که هیچ کس صلاحیت حلال و حرام ساختن و نداره مگر از الله جل جلاله وقتی که خداوند گفت که شراب حرام است تا روز قیامت حرام است نه پیغمبر میتونه ایره حلال بسازه نه آل بیت پیغمبر میتونه ایره حرام بسازه حلال بسازه شراب و نه هم کلام عالم اگر یک عالم پیدا و بگوید که شراب حلال است و وش چی شود؟ کافر شد. و کسی که او را پیروی کرد، او را خدای خود ساخت. توحید در تقنین در قانونی است که صلاحیت حلال و حرام و جایز و ناجیز فقط الله جل جلاله دارد. کسی دیگه حق نداره بر ما حلال و حرام تعیین بکنه. خداوند متعال بیان کرده و پیغمبرش توضیح و تشریح کرده. بران او چیزی که خداوند حلال کرده تا روز قیامت حلال است و او چیزی که حرام کرده تا روز قیامت حرامت. بعضی کسا هستن مگه نه والا ساییم ما دمی چی استیم در طریقی مولانا سای بستیم دامنای ها گرد گرداریم. چرخ حک میزنیم و میچرخیم چرخ بزنیم چرخ که ترکا میرسه باز ترکا میرسه باز باز باز بازی ها شراک میکن بازی اینجا دامنا ها گرد گردار اه؟ گل نار بگم واره بازی دامنا های گل نار بگم در دین داخل کردن اه خاطر که بیچاره ای خواه چی بود؟ خودش بدین بود، حرفای قرآن تغییر داد، مرتضی شد، کافر شد، بدین بود، نظام اسلامی را از بین برد. از این خاطر، اینا رو با خاطر از این رو خوشحال کنن، و پیرواه‌ها اتاتورک چی را خوش داره؟ دولت سرنایه. باز یه هم دکتر گفتن که ولایت اسلام که است دولت سرنایه خوش داره پیرواه اتاتورک دشکلی ده خوش یا گفت نه دشکلی آم باشه. ولی گر کدی نگر، به کی جور میکنن با خلیفه اتاتورک اینال این مردم ها باز که برش میگه گوشت بخون برای من گفته که گوشت گسفند نخو خدا میگه گوشت گسفند بخون پیر از میگه گوشت گسفند اینال ای پیری خدا خدای خدا خود جور کرد چرا که او صلاحیت حلال و حرام رو بکی دار پیری خود اینال تو گوشتگاهو نمیخورد مرا جن میگیره یا مثلا سایکو میگه گشت گوسفند نخو که تقوی پیدا کنی. ما شیه است که یعنی پیغمبرستم که گشت گزفند میخورد؟ تقوی ها. علا الله؟ تقوی ها. تقوی ها از است؟ ازوام که بالاتر است. پیغمبرستم که ریش راشت؟ او تقوی ها نداشت. علا الله. تقوی ها که ریشت چه چیکنی؟ کنی؟ چپتراش کنی. آه. نکتایی بزنی چون پیغمبر نکتایی نزره این نکتایی بزنه بازی دینش شد چرا به خاطر از اینکه یا میخوان که فایل های دین رو کنن ایوازش فایل های اتاتورکا کن. پیست کنه اینا نه خلاص فایل دین 200 جیبی بود و او تکمیل شده بود لکن آلیه ها بر ما فایل های جدید جدید نه تو که معصول هستی و تو شاگرد هستی و تو پشمامی خانی تو باید اول نکتایی بزنی و دیش هم سفتره هاش کل کنی و گشت و گزفند نخوری و یک دانه دامن خوب گرد گلرار بیگمی داشته باشی و باز اگر محفل بیای برخصی اینا تو چه بسیار مسلمان چی پیشرفته اما او کسی که ریش داره او کسی که تقوا داره او کسی که مثل پیغمبر خدا هست و کسی که میخواد که مثلا ریشش مثل ریش رسول الله باشه خدا گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول کی له اطاعت کنین از الله اطاعت کنین و از رسول اطاعت کین من اینا میریش دارم خوش هستی ایراد خوره نیست گرده خانه یا میگه اطیعوا الله و اطیعوا اتاترک آ از الله آتطور کرد آتطور که ما اط این غلط میگیم و آات میگن آطور یعنی بابای ملت بابای ملت اینی خ از این خاطر یا تمام روز دوایشون سر نمی نقطه هست و او به خاطر از این سو ها رو میسن بسیاری کسا بسیاری کسا ها به خاطر ازی که کتون نفرای دیگر جور بیا سزنی؟ این قرض نگیره مخالفت نکنه. بونیش صلاحیت بتش بازی خاطر مجبور است که مثل اونمو پیشنهاد که مشرکین برای محمد هم کردند که یک روز بتای ما رو عبادت که یک روز ما خدای تو رو عبادت میکنیم یا هم گفته که یگان کار ما که تو میکنیم یگان کار تو کردی یک عمر که دولام در دا دین داخل کو یک کم سرنای داخل کو دیگر رو ساید جاز داخل میکنن دیگر رو ساید ببینید که درشد درشد درشد درشد ایرام صاحب در دین داخل کرد چی گفت است؟ پشرفت است ترقیز بگه در دین باید چی رو داخل کنیم؟ وسائل تکنالوژی رو هنرهای تکنالوژی رو کلی شما باید در دین چی کنیم؟ داخل, کنیم؟ داخل کنیم داخل کنیم یک وقت که سر کنید که در دین هیچ چیز نمانده در دین هیچ چیز نمانده. وقت دا دین دول داخل شد صنای داخل شد رقص داخل شد ساز داخل شد دیگرس خنده سالا هم کم کم دا دین داخل شد ها دیگرس توری افغانو هم داخل شد ها دیگر داخل شد دیگرس از کل ازی که داخل شد داخل شد داخل شد بالاخره یک وقت بری سال که به نام دین هیچ چیز نمانده از این خاطر انسان و مسلمان خب و توحید بناهن ما مسلمان ها و موحدین عقیده داریم که صلاحیت حلال و حرام هیچ کسی برای از الله جل جلوه نداره گشت گزفند تا روز قیامت حلال است و خداوند برای ما گشت گزفند نکرده ما ران, مر ران گزفند حلال کباب میکنیم میخوریم و الحمدلله با تقوام میشیم چون رسول خدا هم تقوام داشت هم ران گزفند خورده ما امت رسول الله هستیم است؟ هم تقوی داریم و هم گوشت گوسفند میخوریم اینال این دین مقدس اسلام بر ما اجازه میتن و کس حق نداره که حلال و حرام بسه حرام و حلال بسه آمدیم دیگهش توحید در اسما و صفات توحید در اسما و صفات است؟ که ما نام های خداونده مثل نام های مخلوق فکر نکنیم نام مخلوق مثلا یک نفر است نامش از سخی خودش از بخیل ها؟ یک نفر از نامش از جمیله لیکن خودش از بسیار بد سهیست نیه اناله. یک نفر از نامش از ترگل خودش از سفید. انال نام های انسان همیشه ابو صفات هم انسان نمی داشته باشه اما بعض کسا هست متوجه شده اناله. نام های خداوند انسان با صفاتش نیست اما نام های خداوند اسماء و صفات است چی مانا؟ وقتی که خداوند نام خدا گفته که الرحمن است صفت رحمت هم داره وقتی که گفته که ستار است صفت ستر هم داره که بسیار ستر کننده هم است وقتی که نامش غفار است صفت مغفرت هم داره بنا به موحدین ما موحدین و حضرت محمد سلام و صحابهش والابتش میفتن خداوند هر نامی را که بر خود نسبت داده عمو صفت هم داره اما ما انسان ها گای نام ما با ما میمانه گای نمیمانه بسیاری وقتا ما نامای ما یک چیز هست. بسیاری کسا ل... تخلص هست. یک چیز است؟ اما مردم وقتی که میبینن برعکس از اون تخلص است یک نفر رو میبینی چیز تخلص هست مگه تخلصم زاهد است خودشون تو مزر مفسد است که از کلایی بترتر ها یک نفر میگه تخلص من متقی است ولی ببینی تقوا نداره یک نفر رو ببینی که یک کس <تصفيق> میگه تاکی تك... تخلص من خاکسار است داخل خودش خوب به آخرین استایل پوشیده و حق? در سر خاکیش نمیشینه اینا این تخلص ها و این نام ها و هست؟ از انسان ها نام هایش با اسما و صفات نیست از خداوند متعال چی هست اسما و صفات است همون نامه که برای خود گفته است صفاتش هم خدای متعال داره فهمیدید